اول خاک پدیده های امیق آرام و جامد زندگی شمس کاروان نزدیک سمرقند. باز امشب سر شام به درون عالم دیگر کشیده شدم این بار چیزهایی که دیدم چنان زنده، چنان واقعی، چنان براغ بودند که خانه بزرگ که حیاتش پر بود از گلهای زرد زیبا در وسط حیات، چاهی که خنکترین آب دنیا از آن می جوشید. آخر پاییز، ماه کامل در آسمان، شبی رازالود. چند حیوان که به تاریکی زنده ان در میانه می گشتند. جغت، خفاش، گرگ، بعضی در حال خواندن بعضی در حال زوزه کشیدن. مدتی بعد مردی میانسال از خانه بیرون آمد. پهنشانه، نگاهش آرام، چشمهای اصلیش دوخته شده بر اعماق. بر صورتش سایه قلیز، در چشمانش قمی بیمثال. به چپ راست چرخید و صدا زد شمس، شمس کجایی؟ بادی دیوان سروزید ماه پشت ابرها پنهان شد گویی طبیعت هم پرهیز میکرد از اینکه شاهد اتفاق ها باشد آواز جغتها خاموش شد بال خفاشها از حرکت ایستاد آتش اجاق حتی دیگر صدای ترختروغ در نیاود. سکوت مطلق، سکون بر همه دنیا حاکم شد. مرد آهسته آهسته به نزدیک چاه آمد. خم شد و تا ته چاه را نگاه کرد. زمزمه کرد. شمس، عزیز تر از جانم، نکند آنجایی دهانم را باز کردم تا پاسخ بدهم. اما صدایی از میان لبانم خارج نشد. مرد خم شد و با دقت ته چاه را وارسی کرد. ابتدا جز آبهای تاریک چیزی ندید. بعد یک باره آن پایین متوجه دستم شد که مثل کلکی که بعد از طوفان روی دریا تکان بخورد و با تکان خوردنش دریا را مواج کند آواره و سرگردان روی آب میگشت. به دنبالش متوجه یک جفت چشم شد که بالا را نگاه میکردند. چشمها، چشمهایم از ته چا به ماه کامل نگاه میکردند که از پشت ابرها در آمده بود از جایی که انداخته بودندم به ماه نگاه می کردم. طوری که انگار از آسمان پرسجو میکردم که قاتلم کیست. مرد روی زانوانش افتاد، به سینهش می کوبید و فریاد می زد. کشتندش، شمس را کشتند. در همان لحظه سایی از پای بوتهای خزید آمد مانند گربهای وحشی موزیانه و بازرافت از دیوار حیات گذشت مردی که در حیات بود متوجه قاتل نشد زیر بار غم و قصه فریاد میزد و هرچه بیشتر فریاد میزد مثل آینهای که راز را نگه نداشته ترک میخورد و میشکست فریادش مثل خورده های تیز به چهار طرف پخش میشد و شب را سوراخ سوراخ میکرد بروید کنار ببینم مرد مگر دیوانه شده ای؟ چرا مثل گوساله‌های دیوان فریاد میزنی مگر با تو نیستم پسر این سر و صدا را تمامش کن وگرنی اندازمت بیرون. مگر کری نمی شنوی چه میگویم؟ گفتم ببر ببر دیگر. خودم را به نشنیدن صوت داوودی زدم که بیخ گوشم داد میزد فقط برای آنکه بتوانم کمی بیشتر در عالم دیگر بمانم كونچکاف بودم بدانم چطور مرده علاوه بر این می‌خواستم این مرد را که چشمانش اندوه خالص بود یک بار دیگر ببینم چه کسی بود با من چه نسبتی داشت در شبیه پاییزی برای چه دنبالم می‌گشت اما برای گذشتن از دروازه عالم دیگر فرصت نما یکی دستم را گرفت و چنان با شدت تکانم داد که لحظه با خود گفتم الان است که دندانهایم بریزد. این شد که بازور به این دنیا کشیده شدم. آهسته آهسته بی میل و رقبت چشمهایم را باز کردم. صاحب صوت داوودی را دیدم که بالای سرم ایستاده. مردی قد بلند و چاخ بود. ریش جوگندمی و سبیل از بناگوش در رفته ای داشت که نکهایش را چرب کرده بود. شناختمش. کاروان سرادار بود. در یک لحظه متوجه دو چیز شدم. به داد و فریاد راه انداختن، زورگویی و زهر چشم گرفتن عادت داشت. و الان از خشم خون جلو چشمهایش را گرفته بود. پرسیدم چی شده؟ برای چی دستم را میکشید کاروان سرادار قرلوند کنن گفت میپرسی چی شده؟ باید از تو پرسی چی شده؟ می جیغ زدن را تمامش کن، اینطوری مشتری ها را فراری می داری. همانطور که می کوشیدم از دستهای منگنوارش خلاص شوم با صدایی گرفته پرسیدم، راست می گویی، چیک می زدم، چجور هم، کمی قبل مثل خرسی خاکستری که تیغ به پنجه اش فرو رفته باشد نعره می گفتم الان است که صقف روی سرمان پایین بیاین. تو چت شدی یک دفعه ای؟ همانطور که قضا می خوردی خوابت برد. لابد کابوسی چیزی دیده ای. می تنها توضیحی که ممکن است به نظر کاروان سرادار منطقی بیاید همین است. می توانستم برای آن که راحتم بگذارد مطابق میلش رفتار و حرفهایش را تایید بکنم، اما زبانم به دروغ نچرخید. گفتم، نه، همچو چیزی نشد، نه خوابم برد، نه کابوس دیدم. راستش من اصلا خواب نمی بینم. کاروان سرادار با اصرار پرسید، خب، پس برای چی آن طور میزدی و هوار میکشیدی. چون که به عالم دیگر رفتم و برگشتم من بعضی وقتها برای کشفیات به عالم دیگر میروم خواب و رؤیا یک چیز است کشف و شهود چیز دیگر کاروان سرادار با دهان باز نگاهم کرد با عصبانیت نک سبیلهایش را توی دهانش فرو کرد و گاز گرفت سرانجان گفت، شما درویشها ها همگی زده به سرتان، درویش های مثل تو که دیگر جای خود دارند. بس که از صبح تا شب با دهن روزه توی کوچه ها می گردید و دعا می آفتاب به کله میخورد و لابد همینطوری طوری قاطی می و سراب میبینید. بینید. خندیدم. حق داشت مگر نمیگویند میان فنا شدن در خدا و فنا شدن عقل تارمویی فاصله است در همان لحظه سر و کله دوتا از شاگردهای کاروان سرا پیدا شد که دو طرف مجموعه بزرگی را گرفته بودند و می آوردند مجمعی پر بود از گوشت سرخ شده بز ماهی شور کباب بره معطر، نان پخته شده در روغن دنبه، سیرابی، آش عدس و چه و چه. همین که شاگردها غذاهایی را که آورده بودند بین مشتریها پخش کردند، بوی سیر و پیاز و انواع ادویجات همه جا را برداشت. نزدیک میز من که آمدند، یک کاسه آش و یک قاچ نان سیاه برداشتم کاروان سرادار نگاهی به آش و نان انداخت و پرسید ببینم پول اینها را داری بدهی؟ گفتم نه اما اگر بخواهی می توانم عوض قضا و جایی برای ماندن یک خوابت را تعبیر بکنم مگر تو نبودی که کمی قبل می گفتی اصلا خواب نمیبینی؟ بینی؟ همین طور است. من خواب گذاریم که اصلا خواب نمیبیند بیند. کاروان سرادار روح ترش کرد و گفت. گفته بودم که همگی زده به سرتان. خوب است همین الان بیرونت کنم. الان ببین چی بهت می گویم. حرفهایم را آویزه گوشت کن. یا چه میدانم کنار آن کشکول درویشیت آویزان کن؟ نمیدانم چند سال داری، اما پیداست آنقدر دعا کرده ای که برای هر دو دنیایت کافی باشد. دیگر این کارها را رها کن. برو یک زن خوشگل بگیر، خانواده تشکیل بده، سر و سامان پیدا کن بچه دار بشو. آن وقت ریشه میزنی و یک جا ساکن ساقن می وقتی میبینی همه جا بدبختی است گشتن دور دنیا دیگر معنایی ندارد از من به تو نصیحت گمان میکنی چیزهای جدید پیدا میکنی. نگاه کن از چهار گوشه دنیا مسافر به این کاروان سرامی آید بعد از چند پیاله همگی همان داستان‌های تکراری را تعریف می کنند. آدم همه جا همان آدم است. آش همان آش، آب همان آب، گوه همان گوه. گفتم، اما من که به دنبال چیز متفاوتی نمی گردم، فقط دنبال حق می گردم. سفر من سفر یافتن پروردگار است، یک دفعه صدایش خشن شد در این صورت جای اشتباهی دنبال او میگردی پروردگارت رفت نپرس کی برمیگردد چون نمیدانم این حرفها را که شنیدم سوزشی در دلم احساس کردم گفتم هرکس از خدا بدی بگوید در اصل بدی خودش را گفته. چه بداند، چه نداند، همین است که هست. لبهای کاروان سرادار به تبسمی کج و کوله باز شد. در صورتش انفعال و نوعی سرخوردگی بچگانه خوانده می شد. کردم، مگر نمیگوید ما از شاهرگتان به شما نزدیک خدا در آسمان، فرسنگها دور از اینجا روی تختی نشسته است که هر آن همه همهجاست و درون همه ماست. از این رو هیچگاه ترکمان نمی کند. خودش را چطور میتواند ترک کند؟ کاروان سرادار فوراً با نگاهی سرد جواب داد. اما چیزی که فکر می کنی نمی شود شده. ما را ترک کرد، اما باور کن این طوری بهتر شد. اگر خدا اینجا باشد و وقتی مصیبت‌های جور واجور سرمان می‌آید، انگشت کوچکش را هم تکان ندهد، بگو ببینم این چطور پروردگاری است. آهسته گفتم، این نخستین قاعده از قواعد چهلگانه است. قاعده اول کلماتی که برای توصیف پروردگار به کار همچون آینه‌ای است که خود را در آن میبینی. هنگامی که نام خدا را میشنوی، ابتدا اگر موجودی ترسناک و شرماور به ذهنت بیاید به این معناست که تو نیز بیشتر مواقع در ترس و شرم به سر میبریم. اما اگر هنگامی که نام خدا را میشنوی ابتدا عشق و لطف و مهربانی به یادت بیاید به این معناست که این صفات در وجود تو نیز فراوان است کاروان سرادار گفت مزخرف نگو اینطور طور که تو میگویی خدا می شود محصول مخیله ما به نظرم میرسد که تو حرفش را نتوانست تمام کند چون همان موقع در ردیف های پشت قیامتی برپا شد وقتی برگشتیم و به سمتی که سر و صدا از آنجا میآمد نگاه کردیم دو مرد درشت هیکل دیدیم که نعره های مستانه سر داده بودند هر دو بیشرمانه برای دیگر مشتریها قلدربازی در میآوردند غذایشان را از کاسههایشان برمیاشتند و پیال را سر میکشیدند. اگر هم کسی اعتراض میکرد مثل پسر بچه های بیار، هر هرچه دم دستشان بود به طرفش پرت میکردند. کاروان سرادار تا چشمش به این منظره افتاد با عصبانیت دندان غروجچه رفت. حالا این الاق های آدم نما را ببین. انگار دنبال درد سر می گردند. تماشا کن درویش تماشا کن و یاد بگیر. کاروان سرادار این را گفت و در یک چشم به هم زدن خودش را به آن طرف اتاق رساند. جلوی یکی از مشتری های مست را گرفت و مشت محکمی توی صورتش خواباند. مرد که منتظر چون این چیزی نبود، مثل کیسهی خالی روی زمین پهن شد. از دهانش جز ناله‌ای ضعیف صدای دیگری در نیامد. مشتری دیگر وضعیت را که دید به کاروان سرادار حمله کرد. اما او هم نتوانست مشتهای کاروان سرادار را تاب بیاورد و نقش زمین شد. کاروان سرادار لگد محکمی به پهلوی مرد افتاده بر زمین زد. بعد با های سنگینش دست او را لگد کرد. صدای شکستن استخوان دستش را شنیدی. فریاد زدم: بس است. داری می‌کشیش. همین را میخواهی؟ صوفیم. به بهای جانم دفاع می‌کنم از جان آسم خوردم، به مورچه هم آزارم نمیرسد. اگر پرنده ببینم، سلیمان را به یاد می آورم. اگر ماهی ببینم، یونس را. دست یاری رساندن است وظیفهم. زندگی بخشیدن. اگر ببینم مردی به دیگری آسیب می رساند، برای دفاع از فرد ضعیف. هرچه از دستم بیاید انجام میدهم. اما در آداب ما خشونت جایی ندارد آنچه از من برمیآمد آمد این بود که بدن فانیم را مانند پردهای بیجان بکشم میان کاروان سرادار و کاروانی کاروان سرادار خشمگینانه نگاه هم کرد درویش در این کار دخالت نکن. وگرنه گرنت هم آنقدر میزنم که از کارت پشیمان شویم اما هر دو میدانستیم که این حرفها لافی تو خالی بیش نیست کمی بعد شاگردها آمدند و مشتری ها را از روی زمین بلند کردند دیدم یکی انگشتش شکسته دیگری دماغش همه جا را خون گرفته بود سکوتی ترسناک بر کاروان سرا حاکم شد. کاروان سرادار راضی از زهره چشمی که گرفته بود به من نگاه کرد. با آنکه رویش به طرف من بود خطابش به همه بود. مانند پرنده ای شکاری که بر افقهای دور حکم میراند صدایش از بلندی ها می دیدی درویش؟ با آنکه دلم نمیخواست بجنگم، به جنگم اما جنگیدم چه کار دیگری می توانستم بکنم یعنی میدان را برای این آدم های هار خالی می هرگاه که خدا بنده را این پایین فراموش می کند برپا کردن ادالت به دو شما میفتند. بار دیگر که با او حرف زدی، این را بگو بداند که اگر بره را تنها رها کند گرگ می شود شانه تکان دادم همانطور که به طرف در می رفتم زیر لب گفتم اشتباه میکنی اینکه میگویم زمانی بره بودم و حالا گرگ شده اشتباه است نه تا این جایش درست است واقعا گرگ شده ای میبینم اما اشتباهت این است که به این کارهایت میگویی برپا کردن ادالت کاروان سرادار پشت سرم فریاد زد بیست ببینم کارم با تو تمام نشده به من بده در مقابل قضا و جای ماندن میخواهم خوابم را تعبیر بکنیم برگشتم و گفتم اگر بخواهی کار بهتری برایت انجام میدهم دستت را بده فالت را بگیرم بیام که چشم از مردمک چشمانش بردارم که انگار شعله میکشیدند به طرفش رفتم به نظرم آمد علاقی به این کار ندارد و به من اعتماد نمی‌کند اما دست راستش را که گرفتم و باز کردم مقاومتی نکرد. فالگیرها ادعا میکنند از کف دست آدمها میتوانند می آیندهشان را پیشگویی کنند. من ما فقط گذشته را می بینم. را که آدم تی کرده، تی کرده اما هیچ جوری نتوانست پشت سر بگذارد. خطوط کف دست کاروان سرادار را بررسی کردم. امیق بود. ترک خورده بود. متزلزل و بی صبات بود خطایش. انواع و اقسام خطوط مواج رنگی پیش چشمم پدیدار شد. در اطراف هر انسانی حاله از رنگهای متفاوت هست. حاله این مرد به خاکستری میزد نوعی آبی کدر بود گوهر روحش سوراخ شده بود کنارههایش ریخته بود. انگار نیروی درونی برایش نمانده بود تا در برابر دنیای بیرون از او محافظت کند. در اصل کاروان سرادار به گیاهی میمانست که از درون خشکیده. برای جبران نیروی روحیش که از دست داده بود نیروی جسمیش را دو برابر کرده بود. ضعف درونیش در خشونت ظاهریش منعکس میشد. به همین سبب مدام برای دیگران جس میخوااند. زربان قلبم تند شد چون چیزهای جدیدی میدیدم ابتدا تصویری را که داشت می آمد به سختی می شد تشخیص داد. انگار همه چیز را از پشت پرده توری می دیدم. بعد هرچه بود آشکارا در مقابل دیدگانم جان گرفت. زن جوانی با گیسوانی بلوتی رنگ. بر پاهای برحنش خال خالکوبی سیاه. شال سرخی کشیده بر شانههایش گفتم یکی را که دوستش داشتی از دست دادی. این بار دست چپ کاروان سرادار را گرفتم. سینه های زن رگ زده. شکمش باد کرده. انگار هر آن ممکن است پشکافت. در خانه ای آتش گرفته به دام افتاده. سوارهایی زین نقره‌ای خانه را محاصره کردند. دود کاههای آتش گرفته و بوی گوشت سوخته انسان هوا را سنگین کرده. سواران مقل با گردنهای کلفت و دلهای سنگیشان. سربازان چنگیز خان. حرفم را اصلاح کردم. یک نفر نه. دو نفر را از دست دادی. زنت هنگام مرگ پا به ماخ بوده. کاروان سرادار چشمانش را تنگ کرد، نگاهش را به چکمه های چرمیش دوخت. همانطور که سرش پایین بود و لبهایش را جمع کرده بود، صورتش در هم رفت. نقشه ناخانه شد. یک باره پیرتر از سنش به نظرم آمد، آهسته گفتم میدانم تسلای غمت نیست، اما چیزی هست که باید بگویم، نه آتش سنت را کشت، نه دود، یکی از تیرهای سقف به رویش افتاد، دردم یعنی بیام که درد بکشد، جان دا. اما تو همیشه فکر میکردی در دو عذاب وحشتناکی کشیده. آنطور نبود: کاروان سرادار ابرو در هم کشید. انگار زیر باری تحمل ناپذیر خم شده بود. با صدایی که از اندوه درگه شده بود پرسید: « این چیزها را از کجا می دانی؟ مگر جادوگری؟ خودم را به نشنیدن زدم گفتم از این بابت که نتوانستی زنت را به شکل شایسته‌ای دفن کنی خودت را مقصر میدانی. هنوز هم در کابوسهایت او را می‌بینی که سینه‌خیز از چاله بیرون می‌آید اما ذهنت برایت بازی درآورده راستش را بخواهی هم زنت هم پسرت در حالتی فوقلاده هستم. سبک و آزاد، مثل ذرهای نور در حال گردش در ابدیتم هم. کلمه ها را سبک سنگین کردم و حرفم را به پایان رساندم. اگر بخواهی می توانی دوباره بره بشری، زیرا هنوز در درونت برگی بر هست، جوهرت را گم نکردی ای. تا این حرف را شنید دستش را انگار به تابه داغ خورده باشد از من دور کرد قرولوند کنان گفت مرا نگاه کن درویش اصلا از تو خوشم نیامد امشب می توانی اینجا بمانی اما فردا صبح زود باید گورت را گم کنی دیگر هم این طرف ها پیدایت نشود سرم را تکان دادم فهمیده بودم این طوریست دیگر راستش را که بگویی، عصبانی می شود تازه اگر از عشق بگویی خشن می شود از عصبانیت دهانشان کف می کند و از تو متنفر می شود